خب به نام خدا و سلام به همه امیدوارم حالتون خوب باشه این آموزش اصلی و رسمی یوروفلاین نیست صرفا یه آموزش اجمالیه که بتونید این پروازهای آموزشی رو حالا درول انجام بدید و بعد از اینکه که پروازهای آموزشی رو انجام دادید احتمالا مثلا واسه مرحل بعدی شمید چه آموزشی ضبط کنیم و اینا چون آموزشش حالا خودتون خواهید دید الان که بریم میبینید چقدر پیچیده شده خیلی کار میبره اصلا اگر یورو فلای دور و بلد بودید اینا کلن اطلاعاتی که از اون دارید و بریزید بیرون یعنی اصلا الان با یه دنیا دیگه طرفیم من فرض رو برای اون میگیرم که پروفایلتون رو ساختید و تنظیماتتون درسته فقط یه نکته از تنظیمات رو بهتون یاد خواهم داد و بعد از اون دیگه میریم توی خود فرنامه که من اجراش میکنم خدا کنه فایل دانلودی نداشته باشه چون اگه داشته باشه زمان خواهد برد که دانلودش اتفاق بیفته این صدای بوقی که میشنوید بعد از اینکه، یورو فلای رو اجرا کردید این یعنی این داره اجرا میشه احتمالا داره یه سری فایل ها دانلود میکنه و هر چیز دیگه برحال بسته به صورت اینترنتتون یه خرد زمان میبره که دیگه باز شد به یورو فلای خوش آمدید پروازهای آموزشی خب نم که دیگه صدای خودم باید باد قاطی نكرد. خب من فقط یه چیز از تنظیمات بهتون میگم اونم به خاطر اینکه این صدای بوغ که شنیدین یعنی اینکه دیگه برنامه آماده استفاده است تا اون صدای بوغ نیاد شما نمیتونید بازش کنید. در باره من فقط یه چیز از تنظیماتش میگم بهتون بعد میریم توی اصل داستان. اه... اونم اینه که شما احتمالا دوست دارید با بقیه خلبان ها چت کنید و گفتگو کنید و اینا خب خلبان های ایرانی و شما می دیگه واسه این کار توی تنظیماتش تب می زنم دارم تب می با زبان ها باتن اینو می زنم. خب زبان های نصب شده تب میزنم یه تب دیگه یه تب دیگه زبان های ارتباط دهنده باتن اینو هم میزنم ما 9 تا کانال داریم توی در واقع 8 تا حالا با کانال خصوصی میشه 9 تا 9 تا کانال داریم توی یورو فلای که یک انگلیسیه دور رو اینجا یه کامبو باشته دیگه اینطوری بالا پایین میشید این میذاریم روی فارسی اگر توی کامیونیکیتورش عدد دور رو فشار بدید حالا میره رو فارسی تنها تنظیماتی که در این لحظه من کفتم بهتره بهتون بگم حالا من فرض رو بر این میگیرم که پروفایل این ها رو ساختید تست خب اینجا فقط ما به عملا از بسمت های پرواز فقط به پرواز آموزشی دسترسی داریم دیگه من این تر میزنم روش <تصفح> حالا من چون <تصفح> یه خورده <تصفح> یعنی یه هواپیمای دیگه هم دارم با این سسنا من پرواز تمرینی الان باید انجام بدم <تصفح> خب انتخاب فرودگاه ب زمینم از ایران چی داره؟ بله هم مشکل که قبلا فرودگاه های بدون باند ایران در حال حاضر در یوروف لاک کمه الان که میگه فرودگاه انتخاب کنید، شما ایران رو انتخاب نکنید بهترین ممزن. کار اینه که یکی از همون فرودگاه های جمهوری چک رو انتخاب کنید من دارم توی چک این جمهوری چک نیمبرگ النای این فرودگاه به نسبت راحتیه چون دوروورش پستی و بلندی کمه و همین دلیل اصلا شما یکی از مقصداتون میتونه اینجا باشه برای پروازهای آموزشیتون خب انتخاب میکنم خب اگه پنجره یورو فلای براتون میپره آلت تب بزنید میرسه اینجا خب حالا ما قرار گرفتیم اینجا فرودگاهمون منم انتخاب کردیم و اومدیم به قسمت اصلی حالا اینجا دیگه توضیحات شروع میشه شما برای اینکه در یوروفلای فلای بتونید پروازهای رسمی و اینا رو انجام بدید باید اول چند تا پرواز آموزشی انجام بدید که الان اون مرحله ای که شما توش هستید ترنینگ سطح 1A هست که اینجا از فرودگاه های درجه 1 پرواز می کنید با هواپیما های کوچک نکته ای که اینجا هست اینه که توی یورفلای 3 فرودگاه ها به 3 دسته تقسیم میشن کتگوری 1، 2 و 3 کتگوری 1 باز خودش دو دسته است فرودگاه هایی که باند دارن و فرودگاه که باند ندارن شما توی ترینینگ 1A از فرودگاه هایی میپرین که باند ندارن یعنی به محض این از آشیانه بیایم بیرون وارد یک محوطه 500،, 500 متر در 500 متر میشید معوط 500 در500 متر که اون محوطه 500, 500, 500 متر در 500 متر در واقع جایی که شما ازش میتونید پرواز کنید اه، و الان هم همونه حالا یک سری توضیحاتی هست بر مبنای همه که من باید بهتون بدم هواپیمارو ما الان در حالت cold and dark تحویل گرفتیم یعنی سرد و خاموش یعنی اینکه انگار هیچ خبری نیست دیگه الان هر کلیدی بزنیم هیچ اتفاق نمید فقط به جز کلیدهایی که دستی غیر فعال. به جز کلیدهایی که نیازی به انرژی ندارن خب دستی حالا من به حالت اول برش کردونم اصلا هیچ چی روشن نمیشه اینه لطش اینه که هواپیمار الان خاموش خاموشه, خاموشه. واسه این که ما بتونیم هر کاری روی هواپیما انجام بدیم بجز ترمز دستی و کمربند ایمنی که من با کنترل و بی با کنترل لو بی کمربند ایمنی می بندیم چون اول ایمنی بدکار ما نیاز به انرژی داریم انرژی هم از کجا تامین میشه از باتری باتری چطوری روشن میشه با استفاده از کلیت های کنترل و شیفت و بی این صدا که میشنوید یعنی الان باتری من روشن شد. خب یعنی الان دیگه من میتونم با هواپیما کار کنم. حالا ما نیاز به یک سری اطلاعاتی داریم برای اینکه بخوایم پرواز کنیم. که اون اطلاعات رو با استفاده از کلیدای ترکیبی کنترل و اینتر من میارم مشخصات هواپیماست اینجا سه تا تب داریم. یکی همین اولیه که مشخصات اقافه اگه تب بزنم برنامه پرواز که حالا شما فعلا نیازی ندارید دربارش چیزی بدونید تب میزنم دفترچه سبت وقایم که اطلاعاتی رو بهتون نشون میده که با جهت نمای پایین من حرکت کنم الان الاته من با این هواپیما قبلا پرواز کردم ولی چون پرواز تمرینی باش نداشتم همه چی سفره خب تب میزنیم اینجا میگه خلبان میلاد نسرتیال می و کامبوباس میان پایین SKOPT 951 پرواز عمل کردی این 951 شماره پرواز منه این نباید یادتون بره توی یورفلای سه اتفاقی که میفته اینه که توی برژ مراقبت ها اگر برج مراقبت با خلبان دیگه حرف بزنه شما صدای اون رو هم میشنوید بنابراین باید یادتون باشه که شماره پروازتون چنده که دستوراتی که به خودتون داده میشه رو فقط اجرا کنید میان پایین 3352 هواپیمامه سی سد و حرف سی عدد سد و میان پایین هواپیمای مسافر بری هواپیمای ملخی امانت گرفته شده نوع هواپیماست دیگه میان پایین گواهی شده حالا یعنی این که با این اگه پرواز کنید 100 درصد سالمه آخرین بررسی سیستم هرگز البته این در چون سلامتیش شما همین الان در پرواز آموزشی هستید هر بلایی هم سرش بیارید با سالم تحویل میگید تعداد صندلیاش یه است با جتنامه های پایین دارم میام دیگه تعداد مسافران صفر طول بالها 10 متره یعنی انگار شما هواپیما رو در نظر بگیرید از نوک بال مثلا سمت چپش تا نوک بال سمت راستش ده متره خب طول خود هواپیما از دماغش تا دومش هفت متره میام پایین دول. ایرو میده بعضی وقتا چون نسخه بیتاست خب میان پایین وزن پای خود هواپیما بدون سوخت و مسافر یک تونه میان پایین تی یعنی تون دیگه وزن فعلیش هم یک تونه چون ما بنزین نزدیم هنوز حالا بنزین بزنیم این وزنش زیاد میشه سرعت پروازش 204 کیلومتر مثل پرایده دیگه در واقع پرایدو شما در نظر بگیرید رو هوا داره میره فقط میان پایین خود پراید هم سرعتش زیاد باشه میتونه از زمین بلند بشه خب اگه سوختش پر باشه 1280 کیلومتر میتونه پرواز کنه 4480 متر میتونه ارتفاع بگیره موقعیت فلپ 0 اسلش 3 فلپ صفحاتی هستند که روی بال هواپیما قرار می گیرند و موقع برخواستن و فرود اینا باز میشن این که میگه سفر اسلش سه یعنی این فلپش در سه پوزیشن میتونه باز بشه که هنوز باز نشده سفر یعنی بسته است سرعت پایه برخواستن یعنی مقداری که باید سرعت بگیریم تا از روی زمین بلند بشه سد و دهه. سرعت پایه فرود مقداری مقدار که موقع فرود باید داشته باشیم سرعت استال استال حالتی هست در هواپیما که نیروی جاذبه به نیروی خود هواپیما غلبه میکنه خب یعنی شما وقتی که هواپیما از روی زمین بلند میشه یه نیروی این رو بلند میکنه به هوا اگر از این سرعت استال سرعت اون کم تر بشه نیروی جاذبه به هواپیما قلبه می کنه و هواپیما رو میکشه سمت زمین که در نهایت منجر به سقوط میشه اگر حالا تا جای نادرست این اتفاق بیفته که اگر فلت باز باشه بنزین کم و زیاد باشه و اینا همش روی این تاثیر میذاره که در حال حاضر 120ه سرعت فعلی برخواستن یعنی اگر ما هواپیما رو سنگیم بکنیم حالا بنزین بزنیم مسافر بزنیم اینا بعدا به کار میاد الان چون هواپیما کوچیکه تاثیر چندانی نداره سرعت برخواستنمون چقدر خواهد بود که 110 زاویه دماغه, زاویه دماغه هنگام برخواستن یعنی نکه هواپیما چقدر باید بالا باشه که براش اتفاقی پیش نیاد که این زاویه شه حالا یه راه راحتری وجود داره که اونو بهتون میگن دماغه دماغه حد دقل موقعیت فلب هنگام برخواستن اون فلبی که گفتم سه تا حالت میتونه داشته باشه موقع برخواستن باید روی حالت یکش باشه حداقل طول, حد طول باند برخواستن یعنی چی یعنی اینکه این هواپیما چقدر نیاز باند نیاز داره که بتونه از زمین کنده بشه 408 متر حداقل شه که البته شما اگر خلبان فرزی باشید من رو 250 تا اینو تونستم بلند کنم همین هواپیما رو اون بستگی به این داره که شما چقدر بتونید که دیگه یاد بگیرید به مرود دستتون میاد و میدونید با چیکار کنید میان پایین سرعت فعلی, فعلی فرود همون توضیحاتتی که رااجع برخواستن بود اینجا هم صو میکنه شما موقع فرود سرعتتون باید همینقدر باشه حتی اگر صورتت استالتون فللب رو باز کنید و کمتر بشه شما باید با سرعت فرودتون محاسبه کنید میان پایین حداقل موقعیت فلاپ هنگام فرود که الان گفته دو میتونید روی سه هم بزارارید. الان که اتفاقا تازه کار هستید میتونید روی سه بذارید چون مقدار کمتری نیاز به ترمز کردن دارید. میان پایین و درقل طول باند فرود 365 متر هم نیاز داره که فرود بیاد. مغزن سوختش انقدر سوختم نداریم 7 کیلومتر پرواز کرده. سفلی سوخت مصرف کرده, مصرف کرده. باتریش, روشن. باتریش روشنه که گفتیم موتور خاموش موتر این اتفاقی که توی یورو فلای افتاده اینه که این که آبا پما چند تا موتور دارن واقعه این الان یه دونه موتور داره همونام خاموشه خب این پیشتنظیم دریچه گاز یا تراتل چیزیه که خیلی باش کار داریم از این به بعد من اگر گفتم تراتل همون پیشتنظیم تنظیم دریچه گازیه که شما میشناوید دیگه اینطوری که 90 درصد، 90 درصد. خب. دیگه اینطوری که 90 درصد. درش بسته است. کمر بند ایمنی بسته است. ترمز دستی فعاله که حالا باید غیر فعالش کنیم. موقعیت فعلی فلاپمونم هم که صفر. کامپیوتر ما خاموشه، رادیو که باش با برج مراقبت ارتباط میگیریم خاموشه. فرستنده که موقع ٹیک اف باید روشن باشه اثباتنده واسه چت کردن با بقیه خلباناست ممکنه چون نات ریسپوندینگ بشه من تو این آموزش روشنش نمی‌کنم اطلس که نقشه جهان رو میاره زیر دستتون سنسورم که حالا هوشدارها به موارد لازم رو میده این باد روشن باشه نماشکره وضعیت مال ا های بریل حالا بعد از استینگار اینا که اینا رو توی آموزش کلیش باید توضیح بدیم های تاکسی این اگر همیشه زمانی که می‌خواید روی زمین حرکت کنید این باید روشن باشه که با شیفت و حرف کی روشن میشه تا زمانی که روی زمین حرکت می‌کنید باید روشن باشه موقع ٹیک یا فرود حالا بعد از اینکه فرود اومدید روشن میشه موقع ٹیک خاموش میشه های کابین چراغ داخل هواپیما دیگه اینکه باید شب اگه شب باشه باید روشن باشه طبیتا چراغ های استtropپ چراغهایی هستند بیرون هواپیما واسه اینکه هواپیما دیگه ما رو ببینن وقتی شببه اینارت کللا چراغ ها رو چه روز باشه چه شب روشن بکنید چراغ فرود موقعی که دیگه مجوز فرود رو از برج ملاقبت گرفتین اینو رو باید روشنش کن کنترل دما که دمای هواپیماست دماغ. دماغ رادار طوفان که اگر از جلو طوفان بیاد بهتون میگه حالا الان که واسه شما طوفان نمیاد چون آب و هوا رو تنظیم نکردین سیستم هشدار برخورد سیستمیه که اگه هواپیمایی از جلوتون در بیاد بهتون هشدار میده یا میگه برو بالا یا میگه برو پایین نشانگر استال این اگه روشن باشه که باید روشن باشه وقتی هواپیما دیگه میخواد سقوط کنه شروع میکنه به بوق زدن اون نیروی جاذبه و اینا. در واقع همون داستانه دیگه نیروی جازبه وقتی قلبه کنه اوپی ما شروع میکنه پایین اومدن و اون بوغ میزنه نشانگر زاویه فرمان, دماغ نشانگر زاویه فرمان و دماغه یعنی چی؟ یعنی خب طبیعتا وقتی ما میخواییم تاکاف کنیم بریم بالا دماغمون زاویه خواهد داشت و وقتی که حالا رو هوا باشیم یا رو زمین بخوایم گردش کنیم رو زمین که چرخمون زاویه خواهد داشت، روی هوا هم متمایل میشیم به سمت اون بالی که میخواییم در جهتش گردش کنیم اگه بیش از حد باشه شروع میکنه به بوق زدن که این باید روشن باشه ناوبری صوتی, ناوبری صوتی واسه که یه صدای خوشداری میده که شما در اصل صدای برای صوتی واوسین که من بخشید تلفن از کل تواصل بود یه صدای بحقبوغی میزنه که مقصد رو بهتون نشون میده که باید بریم به سمت اون جهت خودکار واسیینه که شما جهت رو بهش میدین و این خودکار میچرخه به اون سمت که این رو هوا خیلی به درد میخوره و دیگه این هواپیما هیچ قابلیت دیگه ای نداره هواپیما های بزرگتر ارتفاع رو هم میتونید به صورت خودکار تنظیم کنید. یه لیچزای خوب و خوشی داره که حالا بعداً بهتون میگم. خب این از اطلاعات مربوط به هواپیما. پس ما کاری که باید بکنیم اینه که هواپیما رو آماده کنیم که بخوایم بپریم دیگه. برای اینکه هواپیما رو آماده کنیم الان ما کامپیوترمون رو باید روشن کنیم. کامپیوتر روشن. سوخت کم است. خب سوخت کم است. اجازه بدین سوخت کمه است اینکه میبینید های میگه سوخت کمه است یعنی کامپیتر خاموش یعنی که باید سوخت بزنیم دیگه ما اگر حرف ای رو فشار بدیم اول البته کامپیوتر باید روشن باشه روشن. دیگه صداشو تحمل کنیم دیگه سوخت کمه است میگه سفر علم واسه اینکه سوخت بگیریم ما حروف کنترل و ای رو میزنیم سخت. و اون مقدار سوختی که میخواییم رو وارد میکنیم که ما گفتیم این هواپیما 1382 لیتر سخت میگیره دیگه من میزنم و این تخت خب شروع کرد به سخت گیری الاته این الان اینجا خودتون سخت گیری میکنی هواپیما بزرگتر باشه باید یه ماشین براتون بفرستن که سخت گیری کنه خب حالا ما کاری که باید بکنیم اینه که درهای آشیانه بسته است قرب حرف او رو که میزنیم ما اولین بار که میخواییم پرواز کنیم تو آشیانه است دیگه میگه درهای آشیانه بسته است قرب یعنی رو به قربیم درهای آشیانه هم بسته است واسه اینکه درهای آشیانه باز بشه کلیت های شیفت و o رو فشار میدیم خب. فالا کار دیگه ای که باید بکنیم چیه اینه که ما الان گفتیم توی فرودگاهه نب هستیم دیگه اینو یادمون مونده با کلید شیفت و f8 به اون میگه کجاییم من کلید نه رو, رو, رو روی ماشین سا... روی این خط بالای اعداد میزنم خب اینجوری ای کامبو باکسی برام میاره که فرودگاه نزدیکمو نشون میده میگن ایم بگ فرودگاه پر پرواز 134.9 من با کنترل و شیفت و اف رادیو رو روشن میکنم رادیو روشن روشن شد خب حالا alt و f میزنم که فرکانسمو تنظیم کنم حالا میزنم 134.9 اینتر اوکیه از اینکه در فرودگاه ما هستید خوشحالیم. خب، حالا ما وصل شدیم به این فرودگاه. گام بعدی که ما باید انجام بدیم اینه که مقصدمون رو تعیین کنیم و برنامه پرواز بچینیم. اگر میخواید خیلی راحت برنامه پرواز بچینید بهترین کاری نیه که همون اول مقصدتون رو تعیین کنید با کنترل و F8 من فرودگاه های نزدیک رو میارم از نزدیک به دورترین الان برام مرتب کرد میتونستیم F8 بزنیم قاره ها و کشور ها رو به صورت تیریویم میابرد که اون دیگه بیشتر طور میترس آموزش های پولیش ما این توضیح فاهم داد خب من اون نزدیک ترین فرودگاه لا دل... این لامنیس که 40 خورده کلومتر با من فف... فاصله داره دیگه 47 کلومتر حالا من چیکار کار میکنم اسپیس میزنم میگه مقصد تنظیم شد حالا من باید آمار این فرودگاهی که میخوام برم سمتش رو در بیارم. یه سری چیزایی که نیاز دارم بدونم. اون چیزایی که نیاز دارم بدونم چیه؟ کنترل اف هشت میزنم. این فرودگاه ها الان آور. آور. من با شیفت و اینتر مشخصات این فرودگاه رو باز میکنم. شیفت و اینتر رو زدم. خب من چی رو نیاز دارم الان اینجا؟ میان پایین این نیاز دارم ارتفاع از سطح دریا 483 متر این عددیه که برای من مهمه حالا بعدن میگم چرا این یادمون باشه حالا تب میزنم میگه نقشه فرود اینجا اون قسمتیه که باید حتما بهش توجه کنیم ببینید یورفلای سه مثل یورفلای یکو دو نیست که زمین صاف و مسطح باشه شما هر جور دوست داشته باشید پرواز کنید اتفاقی که براتون میفته این هست که کوه ها و اینا نباید باشون برخورد داشته باشید دیگه واسه همین یه دونه نقشه فروت دارین که بهتون میگه ارتفاع امن پروازتون هر چقدر از فرودگاه دور باشید چقدره ما الان میخواییم بریم به سمت اون فرودگاه 40 کیلومتر هم باش 47 کیلومتر فاصله داریم الان چیزهایی که من باید چکم میان پایین ارتفاع از سطح دریا که گفتیم 482 سال اینجا یه چیز مهم داریم میان پایین دایره امن هم ارتفاع 0 کیلومتر یعنی این فرودگاه محدوده هم ارتفاع نداره اگر این دایره امن هم ارتفاع، بیشتر بود بزنم من یه فروگایی میتونم پیدا کنم که دایره امن هم ارتفاعش داشت داشت من یه نگاه بکنم پروازمون را حد کنم اینم نداره خب این خب این خوبه 400 متر دایره هم ارتفاع داره پس من اینو به عنوان مقصد اضافه می کنم گفتم دیگه روی فرودگاه اسپیس می به عنوان مقصد تنظیم میشه پس ما اطلاعات جدید رو به دست می چون فروتگاه ها عوض کردیم دیگه خب ارتفاعش از سطح دریان 220 این راحت تر از اونه. <تصفيق> خب حالا آها. خب اون که میگه دایره امن هم ارتفاع صف نقطه چارکه یعنی چارده همه کلومتر که میشه 400 متر یعنی تا 400 اون ارتفاع از سطح دریای فرودگاه که گفتیم دیویست و بیسته تا چارصد متر دوروبرش هم هیچ پستی و بلندی نیست خب حالا میان پایین دو کلومتری این فرودگاه ارتفاع ما باید دیویست و پنجه باشه از سطح دریا که اینو با حرف زد مشخص میشه پنج، توی کیلومتر ارتفاعمون م... ارتفاع باید همون و شیش باشه 10 کلومتریش نت... سی سد باید باشه 15 کیلومتر 324 کیلومتر 458 که تا 20 کیلومتر شما اگر سمی رو بزنید بهتون میگه ارتفاع امنتون چقدره تو سی کلومتریش باید شیستد حالا من ببینم چند باش فاصله دارم خب پنجا و پنج کلومتر بنابراین بنابراین من اینجا میام پنجا و پنج بین پنجا و سده دیگه میام پایین خب سد کلومتریه یعنی از 100 تا 50 کلومتری این فرودگاه ارتفاع من باید 1520 متر باشه که من اگر کلید ملتا. زد رو فشار بدم ارتفاهم از سطح دریا رو میگه اگر نقطه رو بزنم این که چقدر بالای زمینم رو میگه حالا اگر سمیکولن رو بزنم ارتفاع زمین زیرم از سطح دریا رو میگه که حالا اینو رو هوا بیشتر توضیح میدیم خب پس ما الان راجع به اون اطلاعات داریم چون مساحتمون کمتر از 150 کیلومتر میدونیم که باید چیکار کنیم و به چه صورت باشه خب حالا میریم که ادامه آماده سازی هواپیما رو انجام بدیم. الان اون به عنوان مقصد من تعیین شده. حالا باید همین برنامه پروازی رو به برج مراقبت بدم. F1 میزنم. F1 واسه ارتباط با برج. خب؟ یه کامبو باکس برام میاد که اینجا میگه چه چیزی میخوای به برج بگی؟ با جهنمای بالا پایین حرکت میکنم و من میخوایم یک برنامه پرواز ایجاد کنم اینتر میزنم روش و این شناسه که شناسه پرواز همه گفتم تب میزنم مقصد اونجا که به کامپیوتر دادیم اینجا ثبت شده اگه قبل از اینکه مقصد رو بدیم اینجا بیایم بخوایم انتخاب کنیم اینجا باید مقصد رو دستی وارد کنیم بیه کامبو باکس دیگه بالا پایین میشیم پیداشیم کنیم که کار سختیه تب فیلتر اگر بخشی از اسم فرودگاه رو اونجا شهر و کشور رو فروتگاه رو هرچی بنویسم اون کامبو باکس محدود میشه به اونجا دیگه همتون تون استادین میدونین تب توضیحات پرواز اینجا میتونید توضیحات پرواز رو بنویسید که مثلا من مینویسم اه فارسی هم می نوستم مثلا چون دیگه فارسی جزه زبانهای رسمیشه دیگه نوستم در حال زفت آموزش نوشتم دیگه تب درخواست برای دو دونو پرواز اینجا در حال حاضر داریم بعدا این افضاش بدان کنه یه پرواز هدایت شده مستقیم. یه پرواز مستقیم پرواز مستقیم رو شما محدودیت دارین همه جا نمیتونین استفاده کنین پرواز مستقیم یعنی اینکه که برکت لا مستقیم تیکاف میکشین میریم به سمت مقصد پرواز هدایت شده یعنی اینکه باید به دستورات برج مراقبت گوش کنین در جهتی که اون میگه پرواز کنین که حالاته ما همون پرواز هدایت شده رو میزنیم ولی چون پرواز آموزشیه قرار نیست گوش کنیم درخواست برای پرواز باتن میزنم سکی نو پنج یک. برنامه پرواز بدون هیچ اعمال محدودیتی پذیرفته شد خوب. فرستنده رو تنظیم کنید روی هشت یه عددی بهم به داد مال فرستنده است با کنترل و شیفت و تی فرستنده رو روشن میکنم فرستنده روشن آلت و تی میزنم اون عددی که گفت رو وارد میکنم هشت دو دو شست دو چهار. اینتر خب اینم حل شد حالا اگر شیفت و تی بگیرم میگه اون ادا چنده و البته اگرم تنظیم نکرده باشیم از این طریق میتونیم بفهمیم اگرم نفهمیدید برج مراقبت چی گفته اگه کلید اسپیس رو فشار بدین آخرین دستورشو دوباره تکرار میکنه یک برنامه پرواز بدون هیچ اعمال محدودیتی پذیرفته شد فرستندر رو تنظیم کنید روی 8 2 6 4 خب حالا آماده ایم که البته زیاد هم آماده نیستیم فقط الان میدونیم که داریم کجا میریم حالا وقتشه که موتور رو روشن کنیم این هواپیما یه دونه موتور داره با کلید پیج آپ روشنش میکنم و روشن شد صدا مطور رو کم کنم که صدا, آمده صدا آمده به صدا برسه <تصال> اگه کنترل و شیفت و F12 رو بزنین یه <تصال> والیوم میکسر براتون میذاره یکی <تصال> از اینجا تب بزنید دونه دونه صدا رو میتونید تنظیم کنید حالا من باید همه سیستم ها و دمو دستگاه های این هواپیما رو روشن کنم و کنترل و شیفت و کیو کنترل دما روشن بخاریش حالا کنترل دما دیگه روشن شما با کنترل شیفت و S رادار طوفان روشن رادار طوفان با کنترل و شیفت و سی سیستم هوشاری برخورد روشن با کنترل و شیفت و ای نشانگر استال روشن اگر دوست داشتید توی نقشه هم بگردید با کنترل و شیفت و ال اسلس روشن و با کنترل و بک اسپیس سنسور روشن خوب حالا با شیفت و اس های کابین روشن با شیفت و دی چراخ های استروب روشن اینارم روشن میکنیم حالا چون قراره روی فرودگاه تاکسی کنیم البته شما میتونید مستقیم پرواز کنیم من چون میخوام الان حرکت روی زمین رو بهتون توضیح بدم واسه همین نیاز به تاکسی داریم با شیفت و کی چراخ های تاکسی روشن خب چراخ های تاکسیمون روشنه حالا تا یادمون نرفته با کنترول و اف تنظیم موقعیت فلاپ, موقعیت فلاپ. گفتیم برای تکاف فلپمون باید یک باشه دیگه یک رو میزنم اینتر فلاپ ها تنظیم شدن فلاپ ها تنظیم شدن خب حالا من اگر توی فرودگاه کی رو بزنم طول فرودگاه رو اون طولی که توی فرودگاه هستم رو میگه که الان روی پنجاه هم اگرم ال رو بزنم پانصد و پنجاه ارزم رو میگه با اس هم جهتم رو میگه که قربه من میتونم الان در همین جهت قرب پرواز کنم ولی میخوام چون حرکت رو بهتون توضیح بدم میخوام خودم رو روی شمال تنظیم کنم عزیزان دلم حرکت در یورو فلای 3 به این صورت هست که شما باید به چرختون زاویه بدین خب طبیعتا الان من که قربم جهتم 281 درجه است یعنی برای اینکه بخوام برم به سمت شمال باید بپیچم به راست برای این قضیه من باید به چرخم زاویه بدم که روی زمین من تا 50 درجه میتونم به چرخم زاویه بدم که این هواپیما چون کوچیکه من اونقدر نمیخوام نهایتا 10 درجه میخوام زاویه بدم اگر جهت نماهای چپ و راست رو بزنید میبینید این صدا شروع میکنه به فرش یه بار زدم فقط حرف جی رو اگر بزنم الان یک درجه چرخ من زاویه داره خب اگر دوباره جهت نوایی راست رو بزنم میشه دو درجه اینو بخوام صفرش کنم دوبار حرف جی رو باید بزنم پشت سرم که دیدین صفر شد اون صدام قد شد اون صدا درینگ درینگ یادتونه یه چیزی گفتم که مال اینه که ببینیم زاویه داره چرخ چیز حالا چرخمون بالمون دماغمون و اینا این واسه اونه که این اگر بیش از حد باشه مثلا من زاویه دماغه رو بیش از حد زیاد میکنم چرا میشه باینه بسته نشون جانا خب ببینید الان این صدای بوق ممتد یعنی بیش از حد من حالا چه زاویه بال و چه دماغه رو زیاد کردم که حالا اونم میگم بهتون به چه صورت خب بنابراین ما واسه این که بخوایم بپیچیم باید به چرخمون در اون راستا زاویه بدیم روی زمین جهتنما ها به چرخ زاویه میدن روی هوا به بال که مثلا روی هوا بخوایم بپیچیم به, به سمت راست هواپیما زاویه می زاویه پیدا میکنه به سمت راست که با جهتنم های راست یک درجه یک درجه و با جهنما های شیفت اگر نگه داریم جهت چپ و جهنم های چپ راست رو بزنیم 10 درجه ده درجه این اتفاق میفته حالا من میخوام شما رو با حرکت کردن در یورفلای آشنا کنم ما حالا موتورمون روشنه در یورفلای سه ما یه چیزی داریم به نام تراتل یا همون دریچه گاز که پیش تنظیمش حالا میگم به, به چی صورت هست این تراتل انگار شما یه احرامی رو در نظر بگیرین زیر دستتون که این اگه هم رو بزنید میره رو به بالا اگه اندو بزنید میاد رو به پایین خب <تصفح> میبینید الان من هومو میزنم صدا داره زیاد میشه حته ترمز <تصفح> دستی غیر اول ترمز دستی رو با کلید B باید غیر فعال کنیم میبینید خب حالا من الان نمیخوام دیگه حرکت کنم این اهرم با کلید هوم میره بالا با کلید اند میاد پایین حالا این به صورت این که میگه پیش تنظیم این به چهار قسمت تقسیم شده اون فاصله ای که این اهرم میتونه حرکت کنه خب که با کنترل هوم و کنترل اند بین اون قسمت ها حرکت میکنه الان روی درجه 0 اگه کنترل هوم بزنم میره روی در واقع اون پیشتنظیم اولش اونجا یادتون گفتم ب کنترل اینتر بیارم اینو به صورت عملی پیشتنظیم دریچه گاز یعنی اینکه اهرمم رو تا 15 درصد اون تراتله دیگه اسم محرمم تراتله. تا 15 درصد میبره بالا بیام پایین پیشتنظیم دریچه گاز اگر روی دو باشه از بین 16 تا 5 و2 طبییتتا اولی هم صفر تا 15 بود دیگه بیام پایین بین. درجه سومش یعنی در پیشتنظیم تنظیم سومش میشه بین 53 تا 80 گفت تا 90 درصد و درجه 4 گاز 4 هم بین 90 تا 100 که شما هیچ وقت تا 100 نبریدش بالا چون به موتور فشار میاد و آسیب می بینه همون 90 بهترین حالته پس اینم یاد گرفتیم با استفاده از حرف حرف کلید دلیت اینو به ما میگه که روی چقدر تنظیم کردیم خب پس یه اهرامه با کلید هوم میره بالا به اند میاد پایین یه چند تا پیش تنظیمم داره که انگار اونجا مشخص شده که با کنترل هوم دونه دونه اگه یه بار کنترل هوم بزنید میره روی اولی یه بار دیگه بزنید میره روی دومی یه بار دیگه میره روی سومی یه بار دیگه میره روی چهارمی خب کنترل اندم که برش میگردونه اما نوکته مهم الان موتور هواپیمای ما در حالت آیدل قرار داره یا حالت بیکار یعنی اینکه هیچ حرکتی اتفاق نمیفته اگر کلید آلتو اند رو بزنیم در هر جایی که ما در حال پرواز باشیم یا روی زمین فرقی نمیکنه تیراتل روی هر چقدر باشه آلتو اندو میزنیم میاره روی این حالت آیدل که الان هسته که حرکتی اتفاق نمیفته که فقط و فقط روی زمین وقتی روی زمین هستید این کار رو انجام بدید اگر نیاز بود و وقتی که میخواید فرود بیاید در حالت دیگه این کار رو انجام ندید آلتو هومم اگر بزنیم ما رو مستقیما میبره به حد اکثر مقداری که نیاز داریم خب حالا. من با استفاده از این کلیدای که گفتم یا هوم یا کنترل هوم اهروم رو میبرم بالا و با حرف R پنتون سرعتم رو چک میکنم وقتی رسید به یه حد قابل توجه که روی زمینی من مثلا میخوام با 5 تا سرعت رو زمین حرکت کنم کنترل و دیلیت سرعتم رو ثابت میکنم و اهرمم رو همونجا روی سرعتی که من هستم نگه میداره حالا گفتیم فرودگاه ما 500 در500 اگه کی رو بزنم پولم حالا توی پ درسته اما ال رو که میزنم بگه 500500 یعنی ما باید توی اون 500 در500 قرار بگیریم که بتونیم پرواز کنیم الان 50 تا بیشتر اومدیم بیرون. واسه این من باید از آشیانه بیام بیرون در آشیانه رو که باز کردم حالا من با کنترل هم دریچه گاز رو تای حدی که صدای حرکت هواپیما رو بشنم میارم بالا حرف آ رو هم تونندتون میزنم وقتی رسیدم به اون حد مورد نیازم که مثلا من خوام سرعتم روی پنج و شیش و این حدودا باشه کلیدای کنترل رو دیلیت رو میزنم که سرعتم قفل بشه.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 کلید های آلتو اند رو میزنم که بیاد به حالت آیدل و, و کلید دشت رو یا همون خط تیره که کنار سفر نگه میدارم که ترمز کنم خوب آلتو اند رفتیم آیدل حالا با آها آلتو اند رو گرفتم رفت به حالت آیدل گفت پیش تنظیم در گاز. بعد کلید بک اسپیس رو نگه داشتم که ترمز کنه حالا الان رو 495م حالا من می‌خوام گردش کنم به سمت شمال مثلا دیگه میتونم از همینجا پرواز کنم اما ولی می‌خوام به شما یاد بدم چون فرودگاه بدون باند شما اون مقداری که جل یعنی مقدار باند که مورد نیاز هست برای ٹیک اف اون اگه در اختیارتون باشه مشکلی برای پرواز نخواهید داشت ولی من میخوام گردش کنم برای گردش من شیفت و جهت نمایی راست رو میزنم اگه جیو بزنم الان انحراف زاویه چرخم شد 10 درجه مستن. اگه ماین ما اگه به سمت راست انحراف باشه مستن. عدد مثبت به سمت چپ باشه منفی الان من میخوام از از وست که قربه 270 دیگه بچرخم به سمت شمال خب الان انحراف زاویه من شد درسته حالا دوباره کنترل هم اس اسو میزنم میگه قرب من هی اسو باید بزنم که به سی سد یا سفر که شماله نزدیک بشم توارد دیگه حرکت رو بهتون گفتم چطوره آها بداشت خب الان میبینین یه خورده چرخیده به سمت راست مثلا من سرعتم رو میارم روی 5 تا اینا خوب. اگرم دست نزنید بهش خودش هر ده درجه که به چرخ اعلام میکنه رسید که به 360 یا نورث گفت شمال یا یکو خورده ای من سریع جی رو میزنم که گفت کنه بعد موتور رو به حالت آیدل میارم با آلتو اند و ترموز میکنم خوب یکی دیگه اونم که میبینید الان ما چون چرخیدیم آشیانه در سمت راستمون قرار گرفته که این حالا توضیح چیز نشده الان من جهتم 358ه یه ذره کجم خب. واسه اینکه خیلی تیز نچرخه من دیگه با شیفت و جهت نویروس ده تا نمی‌کنم انحرافمو انحرافو می‌ذارم یه دو تا هر کی یه ذره میارم بالا 7 7 7 7 7 7 چیده لا فایر چیده لا فایر حالا سیزا هم یه ذره سرعتو رو میذارم رو دو تا آلتهوم میزنم که بره حداکثر کنترول دیلیت حالا شمال که گفت دو بار جی موتور رو صفر میکنم و ترمز خب حالا اگه اسو بزنم شما. رو به شمالم من اینطوری شما باید جهتتون رو تنظیم کنید حالا ممکنه مثلا برج مراقبت بهتون بگه جهت دیگه انت. حالا اون توفرودگاه هایی که باند دارن اتفاق میفته بعدن توضیح میدم این فقط میخواستم حرکت رو زمین رو بهتون نشون بدم با کی و ال هم الان 114 چیزمه طولمه که کافیه واسه پرواز 453 هم که عرضمه خب منطقه اصلی که میگه یعنی اینکه از اینجا میتونیم تیک آف کنیم حالا F1 میزنم می خوش... نه این که نه این بخواد به موقع فلات پلان عوض کنید مثلا یه مقصد دیگه انتخاب کنید نه که نه درخواست مجووزه برخواستن انتر میزنم میتونم پرواز کنم حالا من با شیفت و جهنمای پایین 20 درجه اینجا ببینید و ب... انگاری اهرمم شما در نظر بگیرید که تو دستتونه فرمون هواپ ما این شکلی. بدید چپ میره چپ بدید راست میره راست اینو بکشید سمت خودتون رو به بالا میره بدید جلو میاد پایین و با شیفت و جهنمایی راست من 20 درجه بهش زاویه میدم اگه حرف تیو بزنیم این زاویمون رو میگه. حالا اونجا که چطور جی و دوبار زدیم. صفر شد انحراف زاویمون اینجا هم اگر تیو دوبار بزنیم زاویمون انحرافدار میشه حالا من آلت و رو میزنم که هواپیما بره به حد اکثر قدرت و تیک بکشه سرعتش که برسه به صد تا خودش تیک میکشه و از روی زمین بلند میشه با آرم که میتونم چکش کنم فلاپ, فلاپ هم باید یک باشه که بتونم از روزنیم بلند میشه در این هواپی ما فلاپ, بایر. فلاپ, بایر. فلاپ هم یک هست داریم میریم تیک آف کشید لب مرس تیک آف کشید اما این اون نکته بود که گفته بودم خب از فرودگاه خارج شدیم صبر میکنیم تا بگه سر میکنیم تا یه حرف خوشگل بزنه همچنان سر تا اینو بگه با افتوازده و بزن موسیقیش خاموش بشه خب حالا فلپ رو جمع میکنم کنترول اف, اف صفر اسکی نوم پنج ای ای ارتفاع افضایش بدید به هشت هشت برج مراقبت به من میگه ارتفاعت رو ببر به 8 8 8 8 یعنی 880 یه رقمش رو نمیگه خب ولی من چون من میخوام اطمینان حاصل کنم منطقه گفتیم 100 کیلومتری ما 1520 دیگه من اگر الان میزنم ارتفاع هم از سطح دریا داره هی میره بالا اگه نقطه رو بزنم اصلا یه قطعه نمیخواد یه رو تغییر بدید به 3 یه قرار نیست به حرف این گوش کنم میم بالا خب الان من نگه 104 راست روی 104 اول از ارتفاهم ثابت بشه ارتفاهم رو درست رو کنم باز زد دارم چیک میکنم ارتفاع از سطح دریارو اون 1520 متری که اونجا نباه کرده بودیم یادتونه خب وقتی 1520 رت کرد دوبار حرف تیو زدم که ثابت بشه البته خودشم میگفت ها مشکلی از اون جهت نبود ولی من با ذره پی داشتم چک میکردم دیگه خب هاولار میخوایم روی هوا گردش کنیم من دو تا راه دارم راه سادهش اینه ان بزنم میگه 107 تا برو راست روی 107 روی 107 یعنی جهت 107 باشه که من اگر التو اس بزنم و اینجا تایپ کنم سدو هفت حالا شروع کرد به گردش ولی من الان میخوام بهتون هم ببینید دیدین یه یزاگر ولی من میخوام بهتون الان فعلا گردش در هوا رو هم بگم باز هم اون قاعده زمین اینجا هم برقراره مون تا اینجا دیگه 50 تا نیست حد اکثر زاویه‌تون بیشتر از 25 تا بشه سقوط میکنید من شیفت و جهت نمای راست رو یه بار میزنم 10 درجه کافیه واسه این کاری که میخوایم انجام بدیم گفت صد و نو سبر کنم داره گردهش میکنه خودش داره اعلام میکنه بس سه خب سه تار باید برم سمت راست حالا من آلت و اس میزنم راحت ترین راه اینه این بوغی هم که زد یعنی روی جهتی که میخواستیم تنظیم شد الان وقتی من این میزنم میگه روبرو روی صد و نو کنترول رو این اگه بزنم 56 کلومتر دیگه فاصله داریم تا اون مقصدمون 16 دقیقه با این صورتی که الان داریم آ رو بزنم صورت میگه که 250 بلیت رو بزنم قدرت رو میگه که 90 درجه است شیفت و پیج آپ رو از حواستون باشه خود پیژ رو نزن شیفت و پیژ رو که بزنم 90 دیگه قدرت مطورم پیژ آپ بزنید خالی موتور خاموش میشه که حالا اون یک دستان رو حالا دیگه مستقیم پرواز آمونشیه کار خواست و عجیبی نمیخواد بکنیم فرولگاه مقصدمون هم همین شکلیه دیدین یه صدای بوغ اومد وقتی من بلند میشدم بذار صداشو پخش کنم براتون این صدا رو الان من دستی دارم پخش میکنم زیرم باندی قرار ندار این صدا رو وقتی دشنوید یعنی باند زیرتونه موقع فرود این صدا باید تا این صدا نیومده فرود نمیان حالا موقع فرود یادتونه بهتون گفتم نکته خیلی مهمی وجود داره و اونم اینه که ارتفایمون از سطح دریا رو لحاظ کنیم شما نزدیک فرودگاه تا 20 تا بیشتر از ارتفاع اون فرودگاه باید بیاد پایین الان ارتفاع من چنده 1533 با Z فهمیدم نقطه اگه بزنم 1345 متر از زمین ارتفاع داره یعنی ارتفاع از سطح دریا 1533 هست ارتفاع از زمین زیر پام 1345 متر حالا من <تصفيق> اینجا بود دیگه مقصدمون شیفت رو ایمتر بزنم خب خب اون که میگه دیویست متر یعنی من باید وقتی باند زیرمه وقتی روی فرود باهم ارتفاهم باید 20 تا بیشتر از این باشه اگه بیشه دیویست دی خب سیستم فرود ما در یورو فلای 3 به این صورته که با توجه به اون ای که داریم توش حرکت میکنیم هی hey, ارتفاعو کم میکنیم هی hey, کم میکنیم نزدیک فرودگاه که شدیم ارتفاعمون 20 تا بیشتر از فرودگاه باشه وقتی باند زیرمون قرار گرفت با آلتو اند موتور رو میاریم به حالت آیدل که ما یه سقوط ملایم داشته باشه نه اینکه یهو از حد تا این کارو بکنیم وقتی ارتفاع میگم حد اکثر باید 20 تا باشه یه سقوط ملایم بکنه بلا فاصله وقتی خورد به زمین ترمز میگیریم با جهت همون داش اما چی میخواستم یه نکته خیلی مهم میخواستم بگم یادم رفت. آه اینو میخواستم بگم. سرعتمون رو مثلا 20 کیلومتر مونده به فرودگاه این هو اوشا no. میاریم no. با سرعت استالمون یکی میکن. موقعی که فلپ من باز بشه سرعت استالم کم خواهد شد. حتی کمتر از سرعت فرودم اما سرعت فرود رو ما اونجا نگاه کردیم دیدیم 110 کیلومتر. بنابراین من سرعتم رو باید تا 110 تا موقع فرود بیارم پایین حالا میگه یه دونه راست بروسد این جهتتون رو هر چند محضه کنید خب ما دوازده دقیقه دیگه قرار هست که به مقصد برسید این پروازه آموزشی نکته خاصی نداره حالا آنبو. که رو هوای م... آ... امنیت برقراره اینو بهتون بگم برای اینکه آموزشتون با این هواپیما تموم بشه بعد 1000 کیلومتر باید هزار باش پرواز کنید که الان ما دیوایه بزنم دیو خب 24 کیلو پرچیز نیست 1000 کیلومتر باید باید پرواز کنید 10 تا باش تیک اف داشته باشید یعنی 10 بار بگه تیک اف با موفقیت انجام شد و 10 تا هم بگه فرود با موفقیت انجام شد دیگه بعدش هواپیما به ترک و اینا مهم نیست مهم اینه که این فرود ها و ٹیک اف ها به تعداد انجام بشه کنترل الان من اگر بزنم این که اطلاعات اولیه ماس اولی هیچی تا بزنم برنامه پروازمونم اینجا کاری باش نبریم نمیشه پیشورد است رفت در چه ثبت وقایع بیام پایین پرواز کرده این بعضی خطاش خالیه یا دیدین میام پایین هیچی نمیگه یعنی یه بار دیگه میام پایین 0 کیلومتر رو ثبت نشده باید فرود یعنی یه بار فرود بیام یا سقوط کنیم یا هر چیز دیگه که این مقداری که پرواز کردیم ثبت بشه سفت کیلومتر بدون حادثه میان پایین یعنی که به سقوط منجر شده صفر دقیقه سفت دقیقه بدون حادثه برخواستن یک برخواستن یعنی یه تیک آف داشتیم حالا موفقیت آمیز بوده نبوده مهم نیست یک برخواستن بدون حادثه یعنی برخواسته و اتفاق اتفاقی نیفتاده میان پایین سفت فرود. سفت فرود هنوز فرود نیومدیم هیچی ميرونس. سفت فرود بدون حادثه ميرونس. صفر، سقوط چه مارک بار سقوط مگبار متوالی یعنی چند تا سقوط مگبار تو شهر هام هم داشته اینا لحظه های مهمی نیست اولا شما همون چند تا مورد بالا رو می‌بینید داریم بررسی می‌ریم سیو شیشکین متصوب الانم ارتفاعم رو پپو بگو بگو بگو بگو بگو بگو بگو بگو بگو بگو بگو بگو بگو بگو بگو بگو بگو بگو بگو الان باید اعلام میکرد با زد چک کنم جا داره یه خورده دیگه شیفت و جدناهای پایین و چی بالا رو یه بار دیگه میزارم بین کرافم بیشتر میشه با دارم چک میکنم برسه به 1101 حالا هول و حشش ازره کمتر یا بیشتر خب دوبار تی رو زدم که دماغم ثابت بشه دوبار جی پشت سر هم جهتمون رو ثابت میکنه دوبار تی پشت سر هم دماغمونه. خوبه فقط. 6 کیلومتر مونده. حالا آقا شات باورتون نشه. یک چیز عجیبیه که ما میتونیم موسیقی بشنویم F12 هم صداش باز بشه Ctrl و Shift و Alt و وای ببخشید Alt و Y میزنم این چیز اختیاریه فوق. این دیفالت هیچی فایل های صوتی که اینجا ریختیم توی شش که الان بعدا میگم اینجا میتونی پشکنی یه طب دیگه اگه دیگه یه چیز به حالی بازی اینجا رادیو داریم الان اینجا تن رادیو از آزادی دارن روش اینتر بزنم اونم پشت میکنه بله تا ای این بدیش اینه که هر کشوری که باشید رادیو های اون کشور رو براتون میاره یه موسیقی خیلی قشنگی که من خیلی دوستش دارم اونو براتون پخشش کنم وحسن یه واردی حال و هوای دیگه میشن وقتی نمیشن قشنگ حس پرواز رو پر روه میکنه 27 کلومتر سست منطقه امن، ارتفاع امن سی کلومتری مو چپی میکنم شیفت آه یه چیزی من یادم رفت موقع تیک آف باید اجازه تیک آف میخواستم، نخواستم یادم رفت شما یادتون نره صدا موسیقی هم کنم یک گروه تقریبا همین‌طور. یه لطیفه، یه لطیفه. اوکی، باشه. داره. پخش میشه اگر دقت کنید، اون صدای ارتفاع از سطح دریا است. اون اگه بیشتر شد یعنی ارتفاعتون از سطح دریا داره میره بالا. اگه کنترل رو سمی رو بزنید اگر رودرو تو کوهی باشه فاصله اش رو بهتون میگه الان من با این ارتفاعی که الان دارم 200 کیلومتر جلوترم یه کوه هست اینو باید حواستون بهش باشه ساعت مونده 20 ثانیه من كم بقى لكم وقت؟ كونتول اف اتش طيب عمي راح اساله عمي يا باين ديكمي بوب ديستو ديستو بوب بوب بوب بوب بوب بوب بوب بوب 20 کیلومتر مونده بهمون خوش آمد خواهد گفت. من یه برج مراقبت انگلیسی دارم اون قراره با اون میریم حرکت کنه. 951. Welcome to the airspace خب این خودم هم ناقص مونده فقط اسکهش رو ضبط کرده خب میانم پایین اف یک زدم درخواست مجوزه فرود اگه فارسی بود میگفت اجازه فرود دارید خب من که اجازه حالا وقتی من کاما رو میزنم دیگه ارتفاع امن رو اینجا میگه الان اینجا 458ه من ارتفاع میارم رو 458 13 کلومتر این دوباره باید شکش کنم خواهی این اینقدر کافی زیاد زیاده نیست <تصفيق> حالا سرعت رو باید کم کنم البته اول با شیفت و ال چراقه فرود روشن چراقه تاکسی این رو رفته بود خاموش کنم با شیفت و ال چراغ فرود روشن کردیم خب حالا سرعت رو باید بیارم پایین alt و end نظنید اینجاها با کنترل اند بیشترین طریقے واسطه دونه دونه میزنم بیشتر از درشکاز یک همزمان فلپو رو میذارم روی دو اوه هی چک میکنم سرعتمو فلپ ها تنظیم یه موسیقی اونم قطع شد دیگه تنظیم دربیه سرعت, سرعت که اومد رو هلوش 110 هلو مثلا 111م شد اشکال نداره کنترل دلیت میزنم که سرعت هم تثبیت بشه خیلی باید مواظب باشید که اینجا سقوط نکنید. حالا با ارتفاع برنامه می‌برید. هواپیمای بعدی که قراره بگیرید ارتفاع خودکار داره. بنابراین با اون شما دیگه آلتو زد می‌زنید ارتفاع تایپ می‌کنید و خودش میره. دیگه خب این ولی اینو نداره. به جای که داریم فلپمون هم که درسته اگه فلپمون باز نبود زیر 120 سقوط می بس. ولی الان خواهد صد تا سقوط نمیکنه ولی چون سرعت فرود من روی صد و دهه دیگه هی تون وقتی رسید به صد و ده با کنترول و دیلیت متوقفش کردم چرا داره دوازده کلومتری امن خونزده کلومتریمون میشه 324 میام روی 324 با کاما از 20 کیلومتر به یه فرودگاه کمتر هر فرودگاهی فقط فرودگاه مرسد نه با کاما ارتفاع امنون بهتون می که 524 باید باشد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 موسیقی موسیقیو قطع میکنه تمرکزمون اسلش می‌ذاره. ما ایش گند بزنیم دیگه. خب 10 کیلومتر. البته کمتر از 10 کیلومتر باشه. 10 کیلومتر. 10 کیلومتر. منو 306 داد. دیگه الان زیاد تیز سه بار فقط جهت نمای پایین رو زدم. زاویه رو گذاشتم روی منفی 3. زیاد زیاد چیزش نکردم. چون با فقط خور تا می اومدم پایین. خیلی تیز می اومد پایین. یک به هم می‌ریخت ساز و کار. جهت و تا هلویش مثلا 500 متری فرودگاه 500 متری راه تیز. مثلا 1 کیلومتری فرودگاه به جهت توجه کنید. نشه که کلی انحراف زاویه پیدا کنید باشه. 1 کیلومتر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 حالا اگه برسیم به هواپیما هایی که کنترل جهت خودکار دارن یعنی کنترول اتوماتیک اوتوماتیک نویگش خودکار اون خودش جهت رو تنظیم میکنه ولی این رو نداریم فیلن شهرونده 6 و از 5 کیلومتر که شد میام رو ارتفاع امن 5 کلومتری و حال تو کنترل و F1 هم میتونید بازی رو پاوز کنید واقعا دیگه بی‌انصافی بش بگیم. بازی چون واقعا پوست داده آدمو میکنه. یه شبیه ساز بیش از حد به واقعیت. یعنی با واقعیت فاصله چندانی نداره. جزئیاتی داره که اونها لحاظ کنن. دیگه. سرعت هم 110 فلاپ 2 الان فقط کاری که من باید بکنم اجازه فرودم که گرفتم فقط ارت... کاهش ارتفاع من باید انجام بدم و حواسم به جهاز هم داشته این بوغ هم که میزن درست شدی به جهاز di sto cedim anzai che ottan di di sto cedim che sto cedim di sto cedim di sto cedim گفتیم منطقه امن فرودگاه الان ارتفاع 200 ارتفاع از سطح دریامون چقدر؟ چقده ای گفتیم ریسو ارتفاع ما موقع فرود باید 240 باشه <تصفيق> این هم سپی فایب همه که داره اسم منطقه رو نمی کنانا یادم رفتین رو روی اسپیک ترزیمش کنان گفتیم منطقه امن فرودگاه ما 400 متری این 400 متری فرودگاه دیگه من میتونم ارتفاع 20 تا بیشتر از ارتفاع خود فرودگاه باشه که همون چیزه دیگه 100 می‌دونم دی 240 دیگه ارتفاع سطح دریا 290 یه دفعه 900 250 باشیم 400 متر مونده من ارتفاعمو میارم روی 240 که 20 تا بیشتر از ارتفاع خود فرودگاهه مثلا 500 مترم شاید بتونم انجام بدم ریسک داره خطر ترکیدن هست داریم میرسیم با دیگه با جهت کاری ندارم فوقش یه ذره با انحراف قرار فرود بیام یه با دیگه حالا محسیم شروع میکنم به کاهش ارتفاع بیاد رو دیویست و چهل خب بلان دیگه همه چی برای پرواز آماده است فقط کافیه فرودگاه. رسیدیم فرودگاه صدای بوغو که بشنوم آلتو اند میزنم که موتور به حالت آیدل دیوستاندیم. بله فرود. اینه تا بگه فرود. فرود. حالا بکه دش رو نگه میدارم که ترمز کنه هی آر, آر میزنم میبینید که سرعت هم هم بره کمتر میشه اگه فلاپ هم سه بود زودتر از این طور موضوعی کرد وان من چون خیال از خودم راحت فلاپ هم روی دو بذاشته داشت بودم تمام پرواز کامل شد سرعت که رسید به سفر گفت پرواز کامل شد حالا صبر میکنم که خروج چه فقط این از افسونه ها میاد همین بود درباره یه خروج هزار کیلومتر 10 تیکاف و 10 فرود موفق باعث میشه که شما این از شر این سسنا خلاص بشید امیدوارم مفید بوده باشه آموزش های بعدی خدا نگهدار البته که آموزش اصلیش هم بعدا در آینده ضبط خواهد شد، این حالت این بود که فقط با این سسنا بتونید پرواز کنید.